برز سلام و ارادت خدمت شما عزیزان همیشه همراه با یکی دیگر از قصه های افسانه های جادوگری در خدمت شما هستم امیدوارم که در این قصه هم همسفر و همراه من باشید تا یکی دیگر از قصه ها رو به اتفاق شما بشنویم رفیق راه. به نام خدا. روزی و روزگاری پسری بود که به اون جان میگفتند. جان بسیار افسرده و غمگین بود چون پدرش در بستر بیماری افتاده بود و حال و روزش روز به روز وحیمتر میشد. در اون اتاق کوچیک هیچ کس به جز اون دو نفر نبود. پاسی از شب گذشته بود و چراغ نفتی روی میز کم کم روی به خاموشی میرفت. پدر گفت جان تو برای من پسر خوب و مهربانی بودی و من از تو بسیار راضی هستم امیدوارم که خداوند هم از تو راضی و خشنود باشه و تو رو در زندگیت یاری کنه. اونگاه پدر نگاه پر از مهری به اون انداخت و آهی کشید و جان داد انگار به خواب خوشی فرو رفته بود جان مانند ابر بهاری اشک میریخت و حالا اون هیچ کس رو در این دنیا نداشت نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خواهر. بیچاره جان اون کنار تخت زانو زد و دست پدرش رو بوسید و به تلخی گریه میکرد اما سرانجام چشمانش بسته شد و در حالی که سرش رو به لبه تخت پدر گذاشته بود به خواب رفت و خواب عجیبی دید اون خواب دید که خورشید و ماه در برابرش سر فرود میارند و پدرش رو دید که سالم و سر شده بود و مثل گذشته با شادمانی میخندید و در کنارش دختری بود که به نظر مهربان و نجیب می왔 پدر گفت میبینی چه همسر زیبایی برات پیدا کردم؟ در تمام دنیا دختری به خوبی و مهربونی اون پیدا نمیشه. ناگهان جان از خواب پرید و اون رویای باشکوه ناپدید شد. پدرش همچنان سرد و خاموش روی تخت افتاده بود ولی کسی در کنارشون نبود. روز بعد پیرمرد مرد رو به خاک سپردند و جان آنقدر گریز تا کمی سبک شد. آسمان صاف و آفتابی بود و خورشید با شکوه تموم بر همه جا نور می‌پاشید. انگار میگفت نباید بیشتر از این غمگین باشی. ببین آسمون چقدر زیباست. پدرت اینجاست، این بالاست. اون برای تو دعا میکنه و از خدا میخواد که در زندگی خوشبخت و سعادتمند بشی. و دنیا بر وفق مرادت باشه. جان با خودش میگفت من هم در تمام عمرم به پاکی و درستی زندگی خواهم کرد تا شاید مثل پدرم به بهشت برم و در اونجا دوباره همدیگر رو ببینیم اون موقع من حرفای زیادی برای گفتن به پدرم خواهم داشت و اون به من چیزهای خیلی زیادی نشون خواهد داد و از شکوه و جلال بهشت برام صحبت خواهد کرد همونطور که در زندگیش چیزهای زیادی به آموخت وای که در اون زمان چه زندگی شاد و سعودتمندی خواهیم داشت این افکار به قدری شیرین بود که باعث شد اون در حالی که عشق از گناهاش سرازیر بود بی اختیار لبخند بزنه جان به این فکر افتاد که قبل از هر کاری یک صلیب چوبی درست کنه و بالای قبر پدرش بگذاره با این فکر از گورستان بیرون رفت غروب شد که با سلیبی که درست کرده بود بازگشت و با کمال تعجب دید که قبر پدرش با دسته های گلی زیبا پوشیده شده این دست و گلها رو کسانی آورده بودند که این پدر مهربان رو دوست داشتند پدری که دیگه در این دنیا نبود فردای اون روز جان صپح زود از خواب برخاست و بخچهٔ کوچیک خودش رو بست و تمام دارایی خودش که یک کنج و و چند سکه نقره بود برداشت و راه افتاد. اول به گورستان رفت تا برای آخرین بار با پدرش ودا کنه. چران که اون تصمیم داشت به سفر دور و درازی بره و دور دنیا رو بگرده. بعد از شهر بیرون اومد و در جاده راه افتاد. خورشید گرم و پر نور میتابید. نسیم ملایمی میوزید و گلهای زیبا که در زیر نور گرما و بخش خورشید سرشون رو بالا گرفته بودن تکون میداد. مثل این بود که گلها به اون می به دشت و جنگل سرسبز ما خوش اومدی. آیا اینجا واقعا زیبا نیست؟ جان چرخید تا یک بار دیگه نگاهی به کلیسای قدیمی بیندازه. همونجایی که در کودکی اون رو قسل تعمید داده بودند و اون هر یک شنبه با پدرش در مراسم نیایش شرکت میکرد ناگهان چشمش به پنجره باز برج کلیسا افتاد ناقوز با کلاه کوچک و قرمزش اونجا ایستاده بود و دستش رو سایبونه چشمهاش کرده بود جان به نشانه خداحافظی براش دست کنداد داد زن هم کلاه قرمزش رو از سر برداشت و برای اون تکون داد و براش آرزوی موفقیت کرد جان فکر کرد که در طول این سفر چسیرتهایی جالب و شکفت انگیزی خواهد دید. با این افکار به اطراف نگاه می کرد و می رفت. اون رفت و رفت و رفت تا از شهر زادگاهش کاملا دور شد. جان که تا اون روز هیچ وقت انقدر از خانه دور نشده بود تمام چیزهایی را که در راه می دید براش تازگی داشت. اون شب اول مجبور شد که روی یک توده کاه بخوابه با این همه به خودش گفت خیلی عالیه چون حتی پادشاه هم چنین تخت خوابی راحتی رو نداره یک مزرعه بزرگ و پهنابر یک چشمه کوچیک و جوشان توده های بزرگ و کوچک کاه آسمونی پر ستاره که همه زیبا و باشکوه هستند جان سر جای خودش دراز کشید و با خیال راحت تا صبح خوابید و صبح با صدا و زنگ کلیسا از خواب بیدار شد یک شنبه بود مردم به کلیسا می رفتن. جان هم بلند شد و به کلیسا رفت در حیات کلیسا گورهای بسیادی بس چشم می خورد. روی بعضی از گورها رو علفهای هرزه گرفته بود جان با دیدن این علفهای هرزه به یاد قبر پدرش افتاده بود که یک روز هم گور پدر اون به این شکل حتما در میاد چرا که اون دیگه در اونجا نبود تا علف های هرز رو بکنه و اطرافش رو تمیز کنه پس همونجا نشست و علف های های گور و چید و صلیب چوبی رو که به زمین افتاده بود سر جاش محکم کرد و حلقه های گلی رو که باد انداخته بود دوباره به سلیب ها تکیه داد و اون با خودش فکر میکرد شاید یک نفر هم این کارو برای پدر من انجام بده. بیرون کلیسا گدای پیری ایستاده بود. جان تمام سکه رو به اون بخشید و راضی و خوشحال به راهش ادامه داد و رفت. هنگام غروب هوا به شدت طوفانی شد. جان بر سرعت قدم هاش افسود تا قبل از فرارسیدن شب خودش رو به سرپناهی برسونه. اما هوا خیلی تاریک شده بود و اون کورمال کورمال رفت و رفت تا به کلیسای کوچیکی رسید. کلیسا به روی تپهی ساخته شده بود. چون داخل کلیسا شد و در گوشه نشست. اونقدر خسته بود که زود دعاش رو خوند و گوشه دراش کشید و به خواب عمیق فرو رفت. بیرون از کلیسا رعد می و باران سیل آسای می وقتی بیدار شد نیمه شب بود. طوفان دیگه تموم شده بود و نور محتب از پنجره ها به داخل میتابید. درست در وسط کلیسا یک تابوت گذاشته شده بود. توی تابوت یک جسد بود. جسد رو داخل کلیسا گذاشته بودند تا صبح اون رو به خاک بسپرند جان اصلا نمیترسید چون قلب فاک و وجدان آسودهی داشت و به خوبی میدونست که نباید از مرده ترسید. و این زنده ها هستند که باید از اونها ترسید چرا که بعضی از اونها آدمهای بد و خطرناکی از غذا دو نفر از این آدمهای بد جنس کنار تابوت ایستاده بودند اونها میخواستند که تابوت رو از تپه به پایین پرت کنند جان با صدای بلندی گفت این کارو نکنید اون بیچاره رو راحت بگذاریدش دو مرد بد گفتند حرف مفردن اون سر ما کلا گذاشته. پول زیادی رو به ما بده کار بود و نمیتونست فرداخت کنه. حالا هم که بدونی که اون قرضش به ما بده از این دنیا فرار کرده. دیگه حتی یک سکت سیاه هم نمیتونیم از اون بگیریم. ما هم حالا تلافی این کار رو سرش دهن میاریم و اون رو مثل سگ از کلیسا بیرون میندازیم جان با التماس گفت من پنجاه دلار بیشتر ندارم. که اون هم به من ارث رسیده اگه اون مرد بیچاره رو به حال خودش رها کنید و قول شرافتمندانه بدین که با اون کاری نداشته باشید با کمال میل اون رو به شما میدن اون دو گفتن بله میپذیریم اونها پول رو گرفتند و در حالی که با صدای بلند به این کار جان میخندیدند پیکار کار خودشون رفتند جان هم از کلیسا بیرون اومد و در جنگل انبوه به راه افتاده نور مهتاب از لابلای شاخه ها میتابید و جنگل رو روشن میکرد. جان همونطور که میرفت ناگهان صدایی شنید. یک نفر از پشت سر اون, اون رو صدا میگرد. آهای دوست عزیز سلام. به کدوم طرف میری؟ جان پاسخ داد. جای مشخصی نمیرم. دور دنیا رو میگردم. مرد قریبه گفت. منم دوست دارم به دور دنیا سفر کنم. چطوره که با هم همسفر بشیم؟ جان گفت بله فکر خوبیه و بعد با هم به سفر خودشون ادامه دادن طولی نکشید که اونها حسابی با هم دوست و صمینی شدند. حدای اونها مردان خوب و خوشقلی بودند. جان خیلی زود تحمید که غریبه مرد بسیار باهوشیه اون تقریبا تمام جهان رو گشته بود و چیزهای خیلی زیادی از عجایب دنیا میدونست. صبح که شد زیر درخت بزرگی نیشستن تا سبونه بخورند درست در همین انگام پیرزنی به اونها نزدیک شد که پشتش کاملا خم شده بود و با اثار راه میرفت پیرزن یه بسیه هیزم به پشت داشت و توی پیشبندش سه ساقه درشت سرخز و چند ترکه بید گذاشته بود ناگهان، پیرزن سر خورد و با سر به زمین افتاد و فریادش به آسمون بلند شد. جان به طرفش دوید. پیرزن بیچاره پاش شکسته بود. جان گفت: "باید هر چه زودتر اون رو به خونش ببریم." اما غریبه گفت: "عجله نکن." بعد از توی کل بارش مرهمی بیرون آورد و گفت: "الان پاش رو چنان خوب کنم که حتی از اولش بهتر را بره. به شرطی که اون سه ساقه سرخس رو به من بده پیرزن قبول کرد که اون سه شاخه سرخ رو به اون بده قریبه هم کمی مرهم روی پای پیرزن مالید و پای پیرزن خوب شد و به راحتی از جاش بلند شد و به طرف خونش را افتاد جان که خیلی تعجب کرده بود از همسفرش پرسید با اون ساقه های سرخس چیکار چی کنی؟ دوستش پاسخ داد ساقه های خوبی هستند یه روز به درد میخورن. اونها دوباره به راه افتادن. جان در حالی که به افق پیش روش نگاه میکرد گفت هوا داره خراب میشه. ببین چه ابرای سیاه و بزرگی به این سمتیان؟ الانه که بارون شدیده داره همسفرش گفت نه. اونها آب نیستند و حرکت هم نمی کنند. اونها کوهند. کوه، کوههای بزرگ و باشکوهی که وقتی به قلههایشون هایشون سعود می کنی، احساس می کنی که در وسط آسمان ایستاده ای. فردان نوبت ماست که از اونها بالا بریم و از اونجا دنیا رو ببینیم. اما اون کوها اونقدرها هم که به نظر می رسید نزدیک نبودن. یک روز دیگه همراه رفتن تا به دامنه کوه رسیدند. در اونجا درخت های بزرگ به طرف آسمون قد برافراشته بودند و در هر سو تخت سنگ هایی به بزرگی یک خونه به چشم میخورد گذشتن از این کوه ها کار سادهی نبود وقتی که شب از راه رسید جان و دوستش به مهمون خانه ای رسیدند اونها به اونجا رفتن تا غذای بخورند و استراحتی بکنند در سرسرای بزرگ مهمون خونه زیادی جمع شده بودند. در اونجا مردی مشغول اجرای نمایش خیم بازی بود در ردیف جلو یک قصاب چاق و قوی حیکل نشسته بود و سگ بزرگش رو کنار خودش نشونده بود از چهره سگ معلوم بود که بدش نمیاد چند نفری از تماشاچی رو گاز بگیره حیوان هم مثل بقیه مردم صحنه نمایش زل زده بود طولی نکشید که نمایش شروع شد نمایش نمایش شیرین و جذابی بود پادشاه و ملکه روی تخت بسیار زیبای نشسته بودند و با تاچهای تلایی که به سرشون گذاشته بودند و لباسهای گرام بهایی که به تنشون بود و دنباله های بلندی داشت. عروسک های چوبی بسیار قشنگی با چشمان شیشه‌ای و سیویل بزرگ و پرپشت کنار درها ایستاده بودند. دریچه ها رو باز و بسته میکردن تا هوای تالار عوض بشه. نمایش بسیار شاد و با ای بود و هیچ صحنه ناراحت کنندهی نداشت اما فقط خدا میدونه اون سگ زبون نفهم در اون لحظه به چی فکر میکرد. درست در هنگامی که ملکه از جاش بلند شد و خواست به طرف دیگه سحنه نمایش بره، حیوان با خیز بلندی به روی صحنه پرید و کمر باریک ملکه رو در بین آرباره نیرومندش گرفت و فشار داد طوری که صدای شکستن اون بلند شد. قصاب چاق نمیتونست سکش رو مهار کنه و صحنه وحشتناکی بود و دیدن این منظره حال آدم رو به هم میزد. استاد خیمه شب باز که مشغول اجرای نمایش بود با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد چون اون عروسک زریفترین و زیباترین عروسکی بود که داشت. نمایش تعطیل شد و مردم مهمونخونه رو ترک کردند و همسفر جان هم به استاد نمایش خیلی شبازی نزدیک شد و گفت که میتونه اون عروسک رو براش تعمیر کنه. پس مرهمی که داشت روی شکستگی های عروسک مالید عروسک حتی از اولش هم بهتر شده بود چون میتونست بدون اینکه کسی نخهاش رو بکشه حرکت کنه و دست و پاهاش رو تکون بده. اون مثل یک انسان زنده شده بود و میتونست اندامهاش رو حرکت بده فقط نمیتونست حرف بزنه. استاد خیمه شب بازی خیلی خوشحال شد چرا که عروسکش میتونست به تنهایی برخصه و جستخیز کنه و در حالی که هیچ کدوم از عروسک های دیگه نمیتونستن. نیمه های شب وقتی همه خواب بودن ناگهان صدای آهناله عجیبی بلند شد و اونقدر ادامه داشت تا دا همه رو از خواب بیدار کرد استاد خیمه شب بازی هم بیدار شد و به سراغ صندوق عروسک رفت، انگار صدا از اونجا میومد. استاد در صندوق باز کرد و این عروسک ها بودن که با حالتی انگیز آه میکشیدند چون اونها هم دلشون میخواست مثل ملکه بشند و دست پاشون رو خودشون حرکت بدن ملکه به زانوم افتاد و تاج زیباش رو به طرف جان و دوستش گرفت و انگار با التماس میگفت این تاج رو از من بگیرید و در ازاش به دست و پاهای شوهر و درباریانم نیز هم از این مرهم بمالید استاد خیمشبازی دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و به گریه افتاد. بعد به جان و همسفرش گفت اگه تمام عرصکهاش رو مثل ملکه بکنه هرچه به به اونا میده. همسفر ناشناس گفت در عوض این کار هیچ چیز نمیخواد جز شمشیری که استاد خیمشبازی به کمرش بسته بود. استاد قبول کرد و شمشیر رو به اون داد و همسفر جان هم مرحمی رو که داشت به تر عروسک ها مارید عروسک ها از جا پریدند و مشغول رقص و شادبانی شدند چنان میرقصیدند که بچه ها هم به وجد اومده بودند و با اونها همراه شدند اون شب در مهمانخانه شور و پا شده بود که بیا و ببین. صبح روز بعد جان و دوستش از همه خدافزی کردند و از میان جنگل بزرگ که پوشیده از درختان کاج بود به طرف های بلند برافت دادن. اونها اونقدر بالا رفتند و بالا رفتند که برش کلیس از اون بالا مانند میوه سنبول کوهی بود جان هرگز در عمرش این همه زیبایی و شکوه رو در یک جا ندیده بود خوشید در اون هوای تازه و آسمان نیلگون به گرمی می‌درخشید و صدای دلنواز و زیبای نیچوپانها در کوه و دشت میپیچید عشق در چشمان جان حلقه زد و اون بی اختیار فریاد کشید. خداوندا چقدر به ما لطف داشته و داری که جهانی به این همه زیبایی و عظمت آفریده ای. همسفر جان ساکت و آرام ایستاده بود و اون دورها رو تماشا میکرد. ناگهان از بالای سرشون صدای دلنشین پرندهی رو شنید. سر خودش رو بلند کرد و قوی بزرگ و سفیدی رو دید که در آسمون چرخ میزد و طوری آواز می که اون دو نظیرش رو نشنیده بودند اما صدای آواز پرنده کم کم ضعیف و ضعیفتر شد سپس قوی سفید سرش رو پایین گرفت و پایین و پایین تر و جلوی پای اونها بیجان به زمین سقوط کرد همسفر جان گفت چه بالها و زیبا و چه چقدر بزرگ و سفید چه بالهایی واقعا با ارزش هستند؟ من اونها رو برای خودم برمیدارم حالا دیدی شمشیر رو با خودم آوردم چقدر بکارمون میخوره سپس با یک زربه شمشیر هر دو بال پرنده ویژان رو قطع کرد و دوباره به راه افتادن دفتند و رفتند و سرانجام به شهر بزرگی رسیدن این شهر صدها برج و بارو داشت در وسط شهر کاخ زیباب و باشکوهی بنا شده بود که سقفی از طلای ناب داشت و پادشاه در اونجا زندگی می کرد بیرون شهر مهمانخانه بود جان و همسفرش اول به مهمانخانه رفتند تا رخت و لباسی نوبه تن کنند و ظاهری آراسته و تمیز قدم به خیابونهای شهر بگذارند. مهمون خونه به اونها گفت پادشاه این شهر مرد بسیار خوبی و هرگز آزارش رو کسی نرسیده اما دخترش خیلی بدجنسه اون دختر بسیار زیباییه اما چه فایده اون شاهره بدجنسیه که دلاوران بسیاری جان خودشون رو به خاطرش از دست دادن اون به تمام مردان اون سرزمین از مردم عادی گرفته تا شاهزادگان اجازه داده که به خاستگاریش بیان خاستگاران باید فکر دختر رو بخونند و بگن که در اون لحظه به چه چیزی میاندیشه و فکر میکنه. و اگر کسی موفق به انجام این کار بشه می با شاهزاده خانم عروسی کنه و پس از مرگ پادشاه به جای اون بر تخت بشینه و بر تمام اون سرزمین حکرانی کنه اما اگر فکر اون دختر رو نتونن حدس بزنن شهازداد خانوم دستور میده که اون رو به دار بیاویزند یا سرش رو از تنش جدا کنند. پادشاه از این بابت خیلی متاسف بود اما نمیتونست دخترش رو از این کار ظالمانه باز داره چون اون مدتها پیش سوگند خورده بود که دخترش رو در انتخاب همسر آیندهش آزاد بگذاره بنابراین دختر هم آزاده که هر کاری دلش میخواد بکنه هر از شاهزادهی به قصد خواستگاری قدم به قصد میذاره و سعی میکنه که عبدکار شاهزاده خانم رو حس بزنه اما در این کار شکست میخوره و سرشو به باد میده تمام خواستگاران میدونن که چه سرنوشتی در انتظارشونه اما چنان تحت تأثیر زیبایی شاهزاده قرار میگیرن که حتی در آخرین لحظه هم تغییر عقده نمیدن شاه پیر به قدری از این باوت ناراحت و متاسفه که سالی یک بار با تمام سربازان زانو میزنند و دعا میکنند که دل همچون سنگ شاهزاده خانوم نرم بشه و دست این کارهای ظالمانه برداره اما این کار هیچ سودی نداشت مردم چنان ازا دارند که همه چیزشون سیاهه جان پس از این حرفا گفت عجب شاهزاده خانم بدجنسی اگه من جای پادشاه پیر بودم حسابی اون رو تنبیه میکردم در همین موقع سر و صدایی از بیرون به گوش رسید ایده فریاد میکشیدن زنده باد شاهزاده خانوم زنده باد شاهزاده خانم شاهزاده خانوم به قدری زیبا بود که همه مردم خیلی زود فراموش میکردن که اون همون شاهزاده خانم سنگدل و بیرحمه و مرتب فریاد میکشیدند زنده باد شاهزاده خانم دوازده دوشیزه زیبا با لباس ابریشمی سفید که هر کدوم یک گل لاله طلایی تو دست داشتند سوار بر اسبانی سیاه و برراغ اون رو همراهی میکردند و خود شاهزاده هم سوار بر اصف سفیدی بود که به صدها نگین علماس و یاغود مزین شده بود لباس سوارکاریش از پارچه زربفت بود و تازیانهی که در دست داشت مانند اشعه خورشید می درخشید تاج تلاحیش هم مثل خوشه از ستارگان کوچیک بود و شنل زیباش رو از بال هزاران پروانه زیبا بافته بودن وقتی چشم جان به شاهزاده خانم افتاد صورتش مثل لبو سرخ شد و زبونش بند اومد شاهزاده خانم درست شبیه همون کسی بود که در خواب دیده بود در نظر اون دختر چنان زیبا و چنان پاک و معصوم اومد که با خودش فکر میکرد کرد. اینکه میگن شازده خانوم ساهری بدجنسه و اگه کسی نتونه به سوالهای اون جواب بده گردنش رو خواهد زد یا به دار میآویزنش حتما حقیقت نداره اون وقت گفت باید هر طوری شده به قصر برم و از اون خواستگاری کنم دیگران به اون گفتن که این کارو نکن چون حتما سرش رو به باد خواهد داد همسفرش هم خیلی سعی کرد اون رو از این تصمیم باز داره اما جان احساس میکرد که با این کار عاقبت خوشی پیدا خواهد کرد او کفشاش رو حسابی برق انداخت و دست و صورتش رو شست و موهای روشن و زیباش رو شونه کرد و سپس تک و تنها به قصر سلطنتی رفت وقتی جان در زد شاه پیر گفت بیا تو جان وارد شد و شاه پیر به پیشوازش رفت وقتی که دونست اون یک خاصگاره چنان با صدای بلند به گری افتاد که اسای سلطنتیش از دستش به زمین افتاد. شاه با گوشه لباس بلندش اشکاشو پاک کرد و گفت بیا و از این کار دست بردار چرا که سرنوشت وحشتناکی در انتظارشه بعد اون رو به باغ مخصوص دخترش برد عجب منظره وحشتناکی در سر هر درخت اسکلت یکی از خاستگاران نگونبخت آویزون شده بود و هر بار که نسیم می اسکلتها تکون میخوردند، صدای صدایی به هم خوردن استخونهاشون به گوش می رسید پراندگی های می ترسیدند و جرأت نداشتند که به باغ نزدیک بشن گل به دور استخوانهای انسانی پیچیده شده بودند و داخل گلدون ها های نیشخند می زدند اینجا برای یک دختر جوان واقعا باقع عجیبی بود شاه پیر گفت میبینی این سرنوشت توه پس بهتره از همون راهی که اومدی برگردی اگر این کار رو بکنی من رو هم خوشحال میکنی چون اصلا دلم نمیخواد تو هم کشته بشی جان دست شاه پیر رو فشرد و گفت سرانجام همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد چون اون شیفته شاهزاده خانم شده، خداوند هم در این راه به اون کمک میکنه. در همین موقع شاهزاده خانم از راه رسید. جان و شاه پیز جلو رفتند و به اون صبح بخیر گفتند. دختر خانم بسیار به راستی زیبا بود. بعد همگی به تالار قصر رفتند تا استراحتی کنند. خدمتکاران هم براشون مربا و نان زنجویلی آوردند. و شاه بیچاره قصه بود اصلا نمیخواست و نمیتونست چیزی بخوره البته نان زنجبیلی هم صرف بود سرانجام قرار شد که جان صبح روز بعد به قصد بیاد و در حضور اعضای شورای سلطنت و قاضیهای شهر فکر شاهزاده خانم رو حدس بزنه جان میبایست سه بار به اونجا میرفت و میگفت که شاهزاده خانم در اون لحظه به چه چیزی فکر میکنه بگن سر خودش رو از دست میداد جان زیاد هم نگران نتیجه مسابقه نبود اتفاقا برعکس اون خیلی هم خوشحال بود و مطمئن بود که خداوند اون رو در این کار یاری میکنه اما اینکه چگونه و به چه طریق ترجیح میداد که به این چیزا فکر نکنه اون جست و خیزکنان به سمت مهمونخونه برگشت به جایی که همسفرش در انتظارش بود جان مرتب در این باره صحبت میکرد که دختر خانوم چقدر معدب و نجیبه اون با شجاعت اعلام کرد که از همین لحظه آماده کارزار و دختر شاه رو تا به دست نیاره از پا نخواهد نشست. اما همسفر اون سر زیر رفکنده بود و با اندوه میگفت من خیلی به تو علاقه پیدا کردم ما میتونستیم مدت بسیار زیادی با هم دوست باشیم و همسفر باشیم اما حیف حیف که به زودی تو را دست خواهم داد ای جان بیچاره دلم میخواد گریه کنم اما درست نیست که شادی و خوشحالی تو رو در آخرین شبی که با هم هستیم خراب کنم امشب شاد شاد خواهیم بود و حسابی تفریح خواهیم کرد فردا وقتی تو رفتی من میتونم در تنهایی آرامش گریه کنم این خبر خیلی زود در شهر پیچید که خاستگار جدیدی برای دختر شاه پیدا شده و همین خاطر قمواندوه بزرگی در دلهای مردم سایه کند. تماشاخانه ها شدند و غناط روی شیرنی هاشون پارچه های سیاه انداختند و راهبان در کلیسا زانو زدند و دعا خوندند. از هر خونه‌ای صدای آهونالو و افسوس بلند بود. زیرا همه اونا فکر می‌کردند که جان هم عاقبتی بهتر از خاستگاران دیگه پیدا نخواهد کرد. چون که شب شد، همسفر جان معجون عجیبی درست کرد و اون رو به جان داد و گفت جان وقت اون شده که شاد باشیم و جشن بگیریم اما جان هنوز دو لیوان از اون معجون نخورده بود که خوابش برد همسفرش اون رو به آرمی بلند کرد و در رخت خواب خوابون سپس وقتی هوا کاملا تاریک شد بالهای قو رو به پشت خودش بست و یک ساقه سرخس برداشت و در جیبش گذاشت اون وقت پنجره اتاقش رو باز کرد و پرواز کنن به قصر پادشاه رفت. وقتی به قصر رسید روی لبه پنجره اتاق خانم نشست و منتظر موند. تمام شهر ساکت و آروم بود. در داخل قصر ساعت سلطنتی دوازده ضربه نباخت نیم شب شده بود. ناگهان پنجره اتاق باز شد و خانم با شنل سفید رنگ و بالهایی به رنگ سیاه بیرون اومد و پرواز کنون به سمت کوه بزرگی که در دور دست ها بود رفت همسفر جان هم خودش رو نامرئی کرد تا شازده خانوم نتونه اون رو ببینه بعد پرواز کنون اون رو تعقیب کرد همانطور که میرفت با ساقه سرخص چنان محکم به بدن شازده زد که خون از بدن اون به راه افتاد و فریادش به آسمون بلند بلند حقش هم همین بود باد در شنل سفید رنگ دختر افتاده بود و اون رو همچون یک بادبان به همراه خود به هر سومی برد. نور مهتاب از میان اون میگذشت. سرانجام دختر به کوه بزرگی رسید. در زد و صدای مهیبی همچون صدای رعد به گوش رسید. کوه از وسط باز شد و دختر داخل اون شد. همسفر جان هم فوراً به دنبالش رفت. اون دو از گذرگاهی بزرگ و طولانی عبور کردند و به جایی رسیدند که دیوارهاش به شکل عجیبی می درخشیدند. بیشتر از هزار انکبوت نورانی از دیوارها بالا میرفتند و مانند آتش می درخشیدند. بعد به تالار بزرگی رسیدند که از طلا و نقره ساخته شده بود. گلهای سرخ و آبی به بزرگی گل آفتابگردون به روی دیوارها برق می زد اما کسی نمی تونست به اونها دست بزنه. چون ساقه های اونها مارهای زشت و زهراگینی بودند و از دهانشون آتیش بیرون میمد تمام سقف تالار از کرم های شبتاب درخشان پوشیده شده بود هزاران خفاش به رنگ آوی آسمان از اون آویزون بودند و بالهای نازکشون رو تکون میدادن منظره واقعا چندشاوری بود در وسط تالار تخت سلطنتی بزرگی بر پشت چهار اسکلت اسب با دهانه هایی از عنکبوت های قرمز آتیشین قرار داشت. خود تخت هم از جنس نوعی شیشه رنگی بود و بالش های پشتی که از موش های کوچی که سیاه ساخته شده بودند که مدام همدیگر رو گاز می گرفتند. بر فراز تخت هم چتر عظیمی از تارن های صورتی دیده میشد که با زیباترین حشرات کوچیک سبز رنگ که همچون جواهر میدرخشیدند تزئین شده بود به روی تخت جادوگر پیری با تاجی تلایی نشسته بود جادوگر دست دختر رو گرفت و اون رو کنار خودش نشوند سپس موسیقی آغاز شد ملخ های سیاه درشت شروع به نقم سرایی کردند جغتها بالهاشون رو به هم میکوبیدند و صدایی چون تبل در میاوردند چند کتوله سیاه که فانوس به سر داشتند در تالار جست و خیز می‌کردند. اما هیچ کدومشون نمیتونستند همسفر جان رو ببینند او پشت تخت بزرگی ایستاده بود و همه چیز رو میدید و میشنید دربانیان و ملازمان و سربازانی که در طالت رفت آمد بسیار با و باشکوه بودند اما تمام اینها چیزی بیش از تعدادی زیادی دست جارو نبودند که بر سرشون کلم گذاشته بودند و جادوگر با قدرت خودش اونها رو به حرکت در می آورد و به اونها لباسهای زربفت و جواهر نشان بود البته که هیچ کدوم از اونها ارزشی نداشتن چون فقط برای نمایش و سرگرمی درست شده بودن. کمی که شادی و تفریح کردن دختر به جادوگر گفت خاستگار جدیدی برام اومده. بگو کنم که اون نتونه فکرم رو بخونه. جادوگر گفت تو باید چیز ساده و آسانی رو انتخاب کنی. چیزی که اصلا به فکر اون نرسه. مثلا به یکی از که فکر کن. اون متوجه نمیشه. اون وقت تو میتونی سه از بدنش جدا کنی اما فراموش نکن وقتی فردا شب به نظر من چشم چشمهاش رو برای من بیاری تا بخورم. دختر تعظیم قراری کرد و گفت که فراموش نخواهد کرد. اون وقت به طرف قصر پرواز کرد. همسفر جان هم در تعقیبش بود و باز اون رو اونقدر زیر ضربات تازیانه گرفت که ناله دختر بلند شد و با نهایت قدرتی که در توان داشت خودش رو به پنجره باز اتاق خواب انداخت. همسفر ناشناس پرواز کنون به مهمون خونه برگشت. فردای اون روز وقتی جان از خواب بیدار شد همسفر جان بهش گفت که دیشب خواب شاهزاده خانوم و کفشش رو دیده و از جان خواست تا در جواب سؤال شاهزاده خانوم بگه که اون به کفشش فکر میکرده. جان گفت بسیار خوب همین کار رو میکنم. شاید خوابی که دیدی درست باشه با این همه من با تو می میکنم چون ممکنه. دیگه همدیگر رو نبینیم. سپس همدیگر رو در آغوش کشیدند و جان به قصر پادشاه رفت. تالار پر از جمعیت بود. قاضی ها به روی کرسی های چوبی نشسته بودند و نازبالش زیر سر گذاشته بودند. زیرا چیزهای زیادی برای فکر کردن داشتند. شاه پیر از سخت بلند شد و چشمای عشقالودش رو با دستمالی سفید پاک کرد و در همین موقع شاهزاده خانم وارد شد اون با سنگینی و وقار خاصی به همه تعظیم کرد و بعد هم رو به جان کرد و گفت صبح شما به خیر حالا دیگه زمان اون رسیده که جان فکر شاهزاده خانم رو بخونه وای که اون با چه حالت دلفریبی به جان نگاه میکرد اما به محض شنیدن کلمه کفش رنگش مانند گچ سفید شد و تمام بدنش به لرزه افتاد. زیرا جان درست حد زده بود. بچه شگفتانگیز. پادشاه پیر چنان خوشحال شد که از شدت خوشحالی تمام اطرافیانش رو در آغوش گرفت و یکی یکی بوسید. تمام حاضران به افتخار جان کف زدند. اون تنها کسی بود که تونسته بود برای اولین بار فکر شاهزاده خانم را حس بزنه. همسفر جان هم وقتی ماجرا رو شنید خیلی خیلی خوشحال شد جان از صمیم دل از همسفرش تشکر کرد چون میدونست که باز هم به اون کمک خواهد کرد اون شب هم مثل شب قبل همسفر ناشناس دختر رو تا کوه بزرگ تعقیب کرد و باز مثل شب قبل با ساقه سرخس به جونش افتاد وقتی به نزدیکی جادوگر رسیدن جادوگر گفت بهتره که فردا به دستکش خودت فکر کنیم. پدای اون روز وقتی جان از خواب بیدار شد، همسفرش به اون گفت که خواب معما دوم رو دیده و جواب معما دوم هم دستکشه. به این ترتیب جان موفق شد برای بار دوم فکر دختر رو بخونه و شور و بلبله عظیمی تمام تالار رو فرا گرفته بود. شاه و درباریان از خوشحالی فریاد میکشیدند، اما دختر خاموش و غمگین روی تخت نشسته بود و چیزی نمیگفت. حالا فقط یک سوال مونده بود و اگر جان میتونست اون هم پاسوق درست بدهه شازده خانم برای همیشه مال اون میشد و اگر نمیتونست جان جانش رو از دست میداد و چشمهاش به جادوگر میرسید. اون شب جان زودتر از همیشه به خواب رفت داشت رو خوند و به آرامی به خواب رفت اما همسفر اون مانندش دو شب گذشته بالهاش رو به پشتش بست و ساقه سنخس رو با خودش برداشت و پرواز کنون به طرف قصر پادشاه رفت. شب بسیار تاریکی بود. باد چنان تند و شدید میوزید که سفالهای سقف رو با خودش میبرد و درختان باغ شاهزاده خانوم با اسکلت های مانند شاخه های بیتخند میشدند و هر دقیقه سائقه بیشتر میشد و قرش سهمگین رعد بی ادامه داشت. طولی نکشید که پنجره اتاق شاهزاده خانوم باز شد و دختر پرواز کنون از قصر بیرون اومد. رنگ صورتش مانند مرده سفید شده بود. اون با دیدن وضع بد هوا خنده کرد کرده با خودش گفت هوا هنوز خیلی بد و خراب نشده. شنل سفیدش رو دوباره مانند بادبانی سفید در سیاهی شب احتزار زرورد و این بار هم همسفر جان اون رو زیر زربه های بلند خودش گرفت. طوری که خون از سر روی دختر سرارزی شده بود. اون که دیگه رمقی براش نمونده بود به زحمت خودشو به کوهستان رسوند دختر پس از دیدن جادوگر گفت عجب باد و تگرگ وحشتناکی من به عمرم چنین طوفانی ندیده بودم جادوگر گفت ناراحت نباش به جاش من این بار به چیزی فکر خواهم کرد که حتی به ذهن اون بیچاره هم نرسه بگذریم. حالا وقت شادی و تفریحه. سپس کتله های مسخره با اون فانروز های روی سرشون مشغول رقص و پایکوبی شدن انکبوت های قرمز شادمانه دیوارها بالا و پایین می و جغد تبل می و جیر سود و ملخ چنگ می نواختند هیاهوی عجیبی به را افتاده بود هنگامی که همه به اندازه کافی تفریع کردند زمان بازگشت دختر فرا رسیده بود جادوگر گفت که اون رو تا قصر همراهی خواهد کرد و بعد در اون هوای بد و طوفانی پرواز کنون به طرف قصد رفتند. هم سفر جان هم در حالی که هردای اونها رو با تکه بلند میزد به دنبالشون را افتاد چون جادوگر اون رو نمیدید فکر میکرد که این دانه های تگرگی که به سمت اونها میاد و به پشتشون میخوره. جلوی دروازه قصد جادوگر از دختر خداافظی کرد و در گوشش گفت این بار به سر من فکر کن اما همسفر جان این حرف را هم شنید و درست لحظه ای که دختر از پنجره اتاق خوابش به داخل قصر رفت ریش بلند جادوگر رو محکم گرفت و با یک ضربه شمشیر سر از تنش جدا کرد. اونقدر سریع که جادوگر حتی نتونست کشنده خود رو ببینه. همسفر جان بدن جادوگر رو به دریا انداخت تا خوراک ماهیا بشه بعد سر اون رو در آب شست و اون رو در دستمال ابریشمی پیچید و با خود به مهمان برد. فردای اون روز جان وقتی از خواب بیدار شد بخچه عبری رو همسفرش به جان داد و گفت وقتی شازده خانوم از تو پرسید من به چی فکر میکنم این بخچه رو باز کن و نشونش بده این بار در تالار قصر اونقدر جمعیت جمع شده بود که جای سوزن انداختن نبود اعضای شورا به روی سندلی های راحتی نشسته بودند و شاه پیر هم لباس های رسمی خودش پوشیده بود اصا و نشان سلطنتی رو حسابی برق انداخته بود. خلاصه همه چیز زیبا و باشکو شده بود. اما شاهزاده خانوم بسیار رنگ پریده به نظر می رسید و لباسی سیاه رنگ پوشیده بود. مثل اینکه در مراسم ازاداری شرکت میکنه. وقتی جان رو دید از اون پرسید بگو ببینم من به چه چیزی فکر می کنم. جان هم بلا فاصله گرره دستمان رو باز کرد. حتی خودش هم از دیدن سر زشت و ترسناک اون جادوگر بدجنس وحشت کرده بود. لرزه به اندام حاضران افتاد منظره بسیار چندش آور و حولناکی بود. دختر مانند یک مجسمه خوش شده بود و نمیتونست کلمه ای به زبون بیاره. سرانجام از جا برخاست و آه بلندی کشید و گفت حالا دیگه تو همسر و آقای من هستی و عروسی ما همین امشب برگزار میشه. شاه پیر، فریاد کشید، عالی شد، این درست همون چیزی بود که من میخواستم. تمام حاضران یک صدا فریاد کشیدند. زنده باد جان، زنده باد شاهزاده خانوم. دسته موزیک در کیابونهای شهر به راه افتادند و ناغوزها به صدا در اومدند و شیرنی فروشها و پارچه های سیاه رو از روی اجناس خودشون برداشتند. زیرا زمان غماندو سپری شده بود و تمام شهر رو آزیم بستند. مردم، به جشن و پایکوبی پرداختن. صبح روز بعد شاه پیر با همراه تمام درباریان به دیدار اونها اومدن. مردمی که برای تبریک گفتن اومده بودن اونقدر زیاد بودند که صفحه طویلی تشکیل داده بودند. آخر از همه هم همسفر ناشناس جان کل پشتی بردوش و چوب دستی در دست برای خداحافظی اومده بود. جان بارها اون رو بوسید و در آغوش کشید و گفت از پیش من نرو منو تنها نگذار. باید برای همیشه نزد من بمونی. اما همسفر جان سرش رو تکون داد و با لحن ملایم و مهربانی گفت خیر زمان موندن من اینجا به سر اومده و من دین خودم رو نسبت به تو عدا کردم. یادت میاد اون شبیه که تمام دار و ندارت رو دادی تا اون دو مرد با جنازهی که در کلیسا بود کاری نداشته باشن؟ من همون شخص هستم. در تمام این مدت هم سعی کردم به تو کمک کنم. سپس در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. جشن عروسی جان و شاهزاده خانوم یک ماه به طول کشید. اون دو واقعا همدیگر رو دوست داشتن. شاه پیر از اون به بعد دوران شاد و خوشی رو سپری کرد. اون همیشه اجازه میداد داد نبه های عزیزش با عصای سلطنتی بازی کنند. بله دوستان همراه و همسفر من این هم یکی دیگه از قصه های افسانه های جادوگری بسیار سپاس گذارم که تا به انتهای این داستان هم با من همراه و همسفر بودید برای شما همراهان و همسفران خوبم آرزوی سلامتی بیکنم و همه شما بزرگان و خوبان و عزیزان رو به خدای بزرگ می سفرم. مراقب خوبی های خودتون باشید تا قصه دیگر از افثانه های جادوگری خدا یا نگه داری شما کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me slash m